الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده یکتا حضرت سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همینطور که وعده دادی بودیم در هفته گذشته این هفته با برنامه آین سلامت دومین قسمت از برنامه های آین سلامتی در خدمت شما مزارگواران هست در هفته گذشته با موضوع قلب و عروق در خدمت شما عزیزان بودیم و همینطور استاد ارجمندمون حضرت آیت الله جناب آقای زیایی، حجت با من عزیزم، در خدمت خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. خب من از هفته پیش خودم خیلی منتظر بودم که این هفته چهارشنبه بشه با که طور که می‌دونندگو ولدهودی و به شما نعم. در باشیم و من استفاده کنیم از برنامه خب من طبق هفته پیش ابتدا شماره تلفن‌ها رو بخونم ما برنامه رو از سوال و بعد سراغ سوالات شما عزیزان. ابتدا شما را تلفن تماس رو میکنم ۵ یاده دوست و ۲ و پنج چه و یک پنجاهسه دو و ۲ست پ چه و یک شص و نه دو و ۲ست پنج چه و یک سیده همینطور شماره پرمکی که همیشه شبکه داره ه پنج و نه ده پرکاک هفته پیش به دستنامان رسید پرناک خیلی زیاد بود این هفته سری چند تا از سوالات رو بپرسیم محوریت سالار رو در آوردیم و طبقه اون محوریت از خدمت وسط برنامه سالها رو میپرسیم. خیلی خوش اومدید مجدد. هفته پیش بحث‌های خیلی خوبی شد همینطور که چند تا سوال به وجود آمد. و این قلب و عروق اینقدر حساس بود و اون نکاتی که شما دربارش گفتید، مخصوصاً اون سقم قلبی که بهش اشاره کردید، خیلی ممنون. دوست دارم تو این جلسه به این بپردازیم. حالا چه چیزهایی، چه هایی چه هایی چه کار، ممنون. چه کارهایی، چه اعمالی باعث میشه که قلب تقویت پیدا کنه؟ بله. که برای قلب مفیده، از برای تقویت قد تو روایات شیه بیان کرده. مثلا یکی غذا و ریزم و قضی مفید دوم تازه بودن این قضا مونده نباش سوم مصرف به میوه به به نوعه رسیده به به داشتی حالا میتونه خودش بخوره میتونه مربع درست کنه میتونه با آب نیمه آبشه بگیره بخوره اگر کسی یوبوسد و نفخشی شکم داره بس. این برای تقویت قلب ضعیف مفیده بس. کسایی که قلبشون تپش داره و دلشون هرهر میریزه میکنه سوالو تا بیرندگان هفتهی پیش دقیقا همین بود بله اینجا اصل رقیق شده به نوع اصلهای گرم مخصوصا اصل آویشن و اصل نعنا مصرف کنه بلعخص اگر صبح نشته باشه و صبحانه زود باشه با شیر گاب کم چرب و تازه قاطی بشه یه قاشق مراب خوری اصل گرم آویشن یا نعنا یه لیوان شیر ولرم تازه کم چرب با یه قاشق مربو خوری اصل این ها تپش قلب رو کاهش میده پیشگیری هم میکنه چون تپش قلب گاهی از بدخوریه مثل آبلیموتورش مونده. صحبت شد هفته پیش درمانش یا مصرف لیمو امانی زیاد و گاهی هم نه تپش قلب بالا میره به خاطر اینکه شخص دلشوره دلواپسی استراب یعنی دلخوره استرس یعنی نگرانیه مستمر و گاهی پانیک یعنی اختلال حراسی دائم داره اینها هم عواملی هستن که از حیث اختلال روانی ایجاد تپش قلب میکنه یعنی تپش قلب شخص از هفتاد به طرف نوت میره و اگر به صد و برسه ارجانسی میشه ارجانسی میشه یکی دیگه, دیگه از میوهایی که مفرح قلب سیب رسیده است. تو سیب ها سیب قرمز معطر لبنانی و سپس سیب گلاب خراسان رزوی و سپس سیب زرد اینا بهترین سیب های رسیده است. فوائد 11 گانه از روایات شیع استفاده میشه از جمله اینه که مفرح قلبه لذا تو روایات شیع میفرماید اول سیب رسیده معتر را که بوی خوش طبیعی داره اول استشمام کن بوش کن بعد بخور اون بوش تاثیر داره پس آفرین, آفرین. آفرین لذا علامه مجلسی این روایات را رو در بحار جلد 66 چاپ اسلامی تهران و جلد 63 چاپ بیروتی جدید آورده ملی بله یکی دیگه از چیزهایی که مفرح قلبه همچنین ملین مزاجن هست و تقویت میکنه حرکات دودی شکل روده بزرگ رو گلابی رسیده حالا اگر کسی معدش زعیفه میتونه اون سیب یا اون گلابی رو کنفوت درست کنه تو خونه و بدون اوسانس شیمیای هست اگر نه معدش عادیه زعیف نیست و یا جراحی های داخلی نکرده و یا در زنان سزارین نشده که بگیم یکی دو هفته اول بعد از زایمان میوه پخته بخوره اگر این شرایط نبود همین خود گلابی میتونه بخوره چند فائده داره یکیش هم مفرح قلبه چیزای دیگه هم است اگر میخوایید ما روایات برای تا بکنم بله، برای بله. بینندگان و شنمندگان عزیز مثلا در کتابای مختلف از جمله تب المعصومین الرسول و اهل بیتیهی دکتر لبیب بیضون مایجیستر فی العلوم صفحه سی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام قال «أكل و سفر جلیم للقلب الزعیف خوردن میوه به تقویت میکنه قلبی که توانش ضعیفه و یطایب المعده پاکیزه میکنه معده آلوده را و یزکل فعاد و تزکیه میکنه پاکسازی میکنه دهان و حلق آدمی را و یشجع الجبان کسانی که ترسو هم چون جبن بودن ترسو بودن یک صفت بدیه حالا شجاعت طبیعی به انسان برمی و ترس کاذب و ترسو بودن زایل میشه و فرزند آدمی را اونهایی که ازدواج قانونی شرعی کردن و دوست دارن نسل خوبی داشته باشند با فونداسیانو زیر ساخته صحیح یعنی استعداد بالا حتی از حیث ظاهریم مثلا از حیث چهره زیبا باشه به مفیده تقویت میکنه اعصاب رو زیبا میکنه فرزند آدمی را پس زن و شوهرهایی که عقد دائم کردن و در زمان خاص میخواهند اولاد دار بشن از باب تنظیم خانواده یکی از میباهای مفید در سبد قضاییشون بهباشون روایت بعدی پس این روایت همش درباره باره بهب روایت بعدی فرمانش امیر المومنین علی علیه السلام از امام صادق علیه السلام در رابطه با اصل روایت داریم در مستدرک محدث نوری ان العسل آن من کل سم یک غذای کامل بسیار مفید در درمان انواع چرک ها عفونت ها و باکتری ها قارچ ها ویروس ها عسل رقیق شده است که خاصیت میکروب کشیش هم دو برابر میشه تو بحث عسل درمانی هم است و تو بحث میکروبیولوژی یا زیست سلولی و مولکولی هم تو باکتری شناسی و ویروس شناسی مطرح نشه حالا امام صادق علیه السلام در مستدرک محدث نوری و یا امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب طبال معصومین دکتر لابیل صفحه سی سده هیفته و من كل دائن اصل طبیعی سالم که زنبور اصل از شهد گلهای خوشبوی غیر سمی برداش کرده و سپس تولید اصل کرده این شفا از هر بیماری حالا نحوه مصرف رو باز باید کتابای تخصصی نگاه کرد یا نحوه پرورش زنبور اصل و تکثیر زنبور اصل اصلا یک سوالی که الان میانو صحبتشون من واس خواهی میکنم هست متأسفانه ما الان اصل های با برندهای های مختلف توی کشور داخل و خارج داریم بله اصل تقلبی هستند ما الان همین شنا... شناختن اینکه اصل... اصل هم میگیریم حتی شکرک نمیزنه بله، بله. اما این اصل طبیعی نیست بله بله. چه راهکاری شما میتونیم امام رضای حالا در خدمت امام رضای رعوف هستیم و تولد مبارک حضرت نزدیک روز یک شنبه به خدمت شما هست کنم امام رضای رعوف در رساله زهبیه که هفت نسخه خطی در آسان ق داریم به رضا و او فرمودند اصلی که گلوت رو از شدت شیرینی نسوزاند این عسل خوبه اگر گلوت رو از شدت شیرینی بسوزاند این از بدتره چون گاهی عسل تقلبی از شیره نبات یا آب و یا نه از شهد گلهای سمیه مثل گلهای بلدر که ایرانی ها دانه هاش رو به عنوان قرص کمر در زنان بعد از زایمان روز هفتم که تموم شد مخلوط با زرده تخم و مور و فوف اینان کمر میچسمنم برای استحکام کمر دوست. که زن کمر لقی نگیره و مبتلا به استحازه و قائدگی های نمنظم نشد حالا مبایسته خودم در کشور انگلستان هر ساله حدود چندین نفر حالا عددا یادم رفت حدود چندین نفر مسموم میشن به خاطر اصل بلادر که از شهد های سمی بلادره و زنبور عسل اینو برشته اثر کرده پس ما اصل سمی هم داریم رضا در کتاب های مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی مثل پروفوسور پیتر کوپر ترجمه دکتر محمد خوئی و دکتر فررخ سر یکی از مسائل همین ذکره بحث بلادر که سال 1661 در ایران انتشار پیدا کرد این گل بلدر نه این کتاب این که این, این مطلب هم توش داره تو بحث مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی و حتی هر ساله تعدادی مسموم میشن در کشور انگلستان هم توش داره بله. خود خارجی فرمودن داخلی هم ترجمه فرمودن اینا هم فرمودن مطلب بعدی چی موامنا اینه که اصل طبیعی باش پس به فرمایش امام رزا گلو انسانو رو که گرچه در بحث عطال یا اینها مثلا میگن به چیزی نچسبه خاک به خودش نگیره یه فرمایشاتی دارن یا بعضی از عرب‌های حاشیه خلیج فارس از کشورهای حاشیه خلیج مثل امارات دوبه شارجه بحرین و مانندین ها اینا یه دستگاه ریز دارن گاهی تشریف میارن ایران زیارت امام و رعوفی حضرت معصومه یه دستگاه ریز دارن حاجبا مثلا میخواد عسل بخره یه قطعه از این عسل را میداره میذاره رو دستگاش یه ویزی صدا میکنه این شبیه صدای زنبور یه ویزی صدا میکنه بعد نشون میده که این چند درصد اصده برکاله بره بره نویده پنگ درصد هفت درصد مثلا بالای نویده پنگ درصد باشه میگه خب بدک نیست نویده هفت درصد بالا باشه میگه زین زین خوبه مثلا این حالا اسمشی حالا به ذهنم نایمد که اسم اون از حالا مبارسه خودم فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام الاسل و شفاون من کل دائم تو بحث زد افونت و زد چرک و زد باکتری و زد ویروس و رقیق بشه اصل طبیعی خاصیت میکروب کشیش به قول دکتر صادقی دو برابر میشه یا تو بحث زندگی زنبورها پروفوسور فونفریش برنده جایزه نوبل که بعد مهندس عطاالله شهرستانی ترجمه کرده خیلی زمان قبل بیش از 20 سال قبل خب بخوام این کتاب هم میشه در بحث زنبورداری مطالعه کرد یا ماله کتاب عسل درمانی مهندس صالح نجاد میشه تو بحث عسل درمانی مطالعه کرد کاربردهای عسل برای پیشگیری از بیماری ها و درمان بخشی از بیماری ها درست. تا اینجا علم رسیده اینکه که معصوم علیه السلام فرموده شفاع من کل دائن هنوز مراکز تحقیقاتی و پژوهشی باید بیشتر تحقیق کنند. تا بتونن این فرمایش امیر المامین رو تصاور کنن که چگونه مصرف کنن آیا به صورت مفرد آیا به صورت داروهای ترکیبی و مسائلی که در چه زمان بخورن به چه مقدار بخورن میده هر کنم سن طرف چی جوری باشه تا زازج خاصش مصرف بشه تو پزشکی جدید مسارف گوناگون داره حتی سیدی های تخصصی اصل درمانی کشور فرانسه هست که سیدی های اصلش هم به زبون فرانسه هست که گاهی شخص تو دستش میله خورده ها از این طرف دست دار اومده با کندوی طبیعی که اصل طبیعی غیر سمی داره این وره میبنده از این وره اصل طبیعی میریزه و از این وره دستم می‌بنده با کندویی که اصل طبیعی داره یه باند تمیز بهداشتی استالیزه میبنده بعد یه هفته واز میکنه سالم هیچ اثری از سوراخ شدن دست با میله نیست ان قشن الله نشون میده ها تو این بعد دی بله بله سیدیه سیدیه تخصصی اصل درمانی به زبان فرانسه هست بینندگان و چندگان عزیز ما اونایی که آشنا به زبان فرانسه هستن میتونن نگاه کن تا بزرگواران ترجمه ترجمه کنن واسه بقیه افراد خب ولی کشور ما یا اکثر کشورها چیکار میکنن مثلا میاد اول یخ می‌ذارن تا به به امدادی یا به اورژانس که عفونت نکنه و و عصب لیز نشه در تخصصی مغز و چون لیزی عصب پیش نیاد یخ خب. رو می‌ذارن تو کیسه فریزه کیسه فریزه زایده زد افونی می‌کنن جای این شکاف می‌ذارن که بعد. بعد. بعد که اونجا رسیدن اول میاد با آب مقطر شستشو میدن بعد ضد افونی با تنتور یاد میکنه بعض جا با بتادیم بعد میان با بخیه و مسائل دیگهی که متخصصین متعهد جراه همه جای کره زمین بردن به نام جراهی کارنت شیوه های جدید تکنیک های خب بعدم هم ها جاها رد بخیه ها قالبن میمونه مگر اینکه اون نخای بخیه از روبه گوسفند باشه که در جراهی داخلی استفاده میشه حالا جای مرز... افونت میکنه جای رد بخیار باید باز باید از تماد نیتروفورازان که از نیترات نقره هست استفاده میکنن باز اینا از عبا علی سینا یاد گرفتن که عبا علی سینا قسمت زخما رو به خاطر اینکه که افونت باکتریایی و غیر اون نکنه سکه های نقره رو مینداخت تو آب جوش به جوشه بعد با پارچه تمیز شفاف مثل پارچه سفید نخی که تمیزم بود میگیره می می‌گیره می‌زنه این آبجوشی که توش سکه نقره بود بعد زخم رو شستشون میده به خاطر اون نقره که توش؟ آفرین بحث نشات نقره که ضد افونی کننده است بخوری مسمومیت غذایی میاره دندون ها رو نمی‌آی با مثلا نقره پر کنیم ولی با قاب طلای زاد می‌گیریم یا تو بحث این پلنت ها با بعضی از فلزات مفید ترج میکنیم پیچ می‌کنیم به فک حالا ایناش حالا با خودم. دوست. تو مباعث خودم خواستم بگم تو بحث درمان با اثر مسائل مختلف نمیتونن تحقیق کنن و علم روز خیلی کم میدونه تا بلسه به فرمایش امیر علی علیه السلام که الاسل و شفاون من کل دائن ولا دعفیه دا هیچ دو بیماری در اثر نیست به شرطی که درست مصرف بشه مثلا اگر کودکانی هستن شیرخارن شیش ماه تمام تموم شدن برس حالا از شیش ماهیگی تا دو سالگی بهترین ریز مقضیه کودک شیرخواب یک قاشق چای خوری اصله در 24 ساعت این اصل سقیل آفهین آفهین تو آب بلن یا آب این رقیقش میکنی تو نصف استکام تو 24 ساعت یواش یواش میدیم بچه میخور چقدر برایش مفیده تو بحث افونت های چشمی تو بحث افونت گوش داخلی تو بحث افونت ادراری تو بحث افونت دستگاه تناسلی بسیار خوبه دست. لذا فوق تخصص های بیماری های افونی از جمله متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های افونی کودکان مثل دکتر علی اکبر سیاری آجا تجویز میکنه که یه مدتی هم معامل وزیر بهداشت از متخصصین خب حالا مباحثه ما بحث اصل درمانی پس چگونه مصرف کردن چه مقدار مصرف کردن سن طرف چجوره بحث جنسیتش بحث مقدار لازم و نیاز لازم این بدن هر بدنی با بدن دیگه فرق از دید داروی اگه به عسل نگاه کنیم دقیقاً میشه گفتش که اون دستور خوردن و دستور استفادهش حتما برای هر فرد فرق میکنه اصلا اصلا عسل باید با متخصص گوارش متخصص تغذیه یا فوق تخصص بیماری عفونی باید مشورت کنند یا تو طب گیاهی یا طب مکمل یا طب معصومی با کسایی که خبره هستند باید مشورت علمی کنند حتما خود درمانی علکی نکن ولدا فيها <تصفح> یکی دیگه از فواید اصل چی آقا یا بلغم و یجل قلب هم قلب آدمی رو جلا میده و هم اینکه بلغم یعنی زیادی خلط و مخاط در گلو و ابتدای نای و هنجره و همچنین فوق ششها این قسمت فوقانی ششها اینها اگر مثلا التهاب اضافی باشه تجمع مایع اضافی باشه اینها رو همه رو خوش مدارد. لذا سنای بالای چل سال بلعخص 50 سال به بالا غالبا اینها بلغمی مزاج هم صوفای مکرر خلطی دارن و بعضی مشکلات پایین تنه دارن از جمله عفونت ادراری بلعخص وقتی که آبم کم میخواه درست لذا در تخصصی اورولوجی چارلیبان آب چارلیبان آب جوش حتما باید بخوره تو بیس ساعت حالا این زده عفونی طبیعه نمیخوره آب آشامیدنی سالم هم به مقدار لازم نمیخوره سنای بالای پنجه سال بلغمشون بیشتر میشه و مشکلات پایین تنه و مشکلات صدری پیدا میکنه خوب. حالا خواستم بگم که بلغم رو کاهش میده خلطای اضافی تجمع مایات اضافی کاهش میده بیماری های باکتریایی رو از بین میبره جلای به قلبم میده چون آدم گاهی قلبش دلگیره هم مقام داره نمیدونه از کجاست با این که در ظاهر عامل استرس هم نداره انگار یه جوری اون قلب روانه کمک میکنه افن افن احسن تقویت آرامش روانی و استمرار او و تقویت قلب به آب به, به مربای به،, به خود میوه به رسیده و همچنین به مصرف یک قاشق مرباخوری عسل در 24 ساعت یه حد اقلش اگر نه تو دو قاشق مربخوری هم میتونن میتونست. یه قاشق مربخوری صبح باشیرش مثلا هم میخونه یه قاشق مربخوری شب بعد از شام تا وقت خواب شبانه قاطعه آب سیب کنه لذا تو روایاتشی هم در روابطه با سیب هم روایات داریم امام صادق علیه السلام فرمودن لعلمن ناسو ما ست ما داو به اگر مردم میدونستان فواید سیب درختی رسیده چقدره بیماران خودشون رو درمان نمیکردن مگر با سیب رسیده مثلا در تب سیب تبره تب در بحث آنتی بیوتیک طبیعی و وجود چرک و افونت داخلی سیب آنتیبیوتیک طبیعه تو بحث اشکریزیای های بی ولی حساسیت فصلی نداره ولی آنتیهیستامین طبیعی میخواد بدون داروشی میایی سیب آنتیهیستامین طبیعه تو بحث فقر آهن آنمی فقر آهن سیب درمان آنمی فقر آهن میکنه نظیر اصل نظیر خورما این همه تو پزشکی سابس شده است. چه پزشکی جدید مومنم مثلا اصولت به داخلی هاریسان جلده هفت تو بحث تغذیه تو بحث ویتامین ها به شما هست شود که حتی یک کتابی هست حاجب بحث سیب و سرکه سیب میکنه خارجی نمیشه، ایرانی هم ترجمه کرده هست تو کتابای قدیمی خودم الا ما شاءالله هست مثلا دیان داروی احمد حاجی شریفی یا مثلا فرض کنید تو بحث قراربادین کبیر سید اسماعیل یا تو بحث قانون ابو علی سینا جلد دوم چپای قدیمش ترجمه سروش هست از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یا مثلا فرض کنید که این چپای جدید هشت جلدیش که مرکز مطالعات و تحقیقات ایران انجام داده که سرپرستشون حضرت آقای دکتر علی اکبر ولایتی متقصص طبع اطفاله بله بله. و فوق تخصص تاریخ اسلامه مخصوصا در دویس سال اخیر خیلی وارده این شخص مؤمنه متخصص متعهد حالا منظورم این که تو هشت جلد قانون ابو علی سینا رو چاک کردم حتی فرما شد ابو علی سینا رو به اصطلاحات جدیدم مترادفاش آوردم ترجمه اووردن بله بله خواستم تو بحث سیب بگیم حالا مبارسه خودم بله. <تصفح> اگر قلبی دلگیره و احساس میکنه که دلش گرفته خودش هم نمیدونه چیه اینجا میگیم تو سبد غذایی یک دونه سیب بذار نظیر گفتار خارجیای یونسکو در سال 1000 بله 2002 میلادی 2002 میلادی وان اپل تو دی روزی یک سیب مخوام بگم این تو روایات شیه و تو کتب شیه موج میزنه تو بحث فواید سید که در سرد قضایی خانوار باشه خیلی فواید داره یکیش هم مفرح قلبه حتی زد سحر و زد لمم که یه قسفاسی هم هست اینا تو روایات شیه حالا علم جدید بدوه تا این دوتای اخیره بفهمه تو کسانی که ضعف عمومی شدید دارم و زعف قلبم دارم هی دلمان شک می گرم. سرگیجه دارن چشماشون سیاهی میره گای میافتن زمین برس. شبیه اغما اینجا باز حاج قام بعد از شام یکی دو تا سیب رنده ریز میکنه یه قاشق پلو خوری توش عسل هم میزنه میخوره به دو هفته نمیکشه قبراق سرزنده اینم تجربه خیلی عالی بله بله چون پشت خط داریم ببینیم ببینید اونم میتونیم جواب بدیم باز اگر وقت داشتیم میریم به سمت اینکه بفهمیم خب ما منتظریم که تماس تلفنی رو برقرار کنیم من یک بار دیگه خلال شما تلفن ها رو میخونم صرف 511 225 41 53 صرف 511 225 41 69 225 41 13 شماره پرمکی که میتونیم پرمکاتون رو به اون ارسال کنید 3059 ده هست. عرض کردم هفته پیش ما پرمکاتون زیاد و تماس زیادی داشتیم به خاطر زمان برنامه نتونستیم همه رو پاس خوب باشیم انشالله امروز بتونیم جواب ها رو بدیم. مثل که پشت خطی دونیم عزیزی رو راس میکنن از اتاق فرمان در بین این که پرمکاتون میفرستید برنامه برای امروز اگه پرمکی می کنید با موضوع قلب و عروق یعنی ابتدای پرمک حتما درش کنید قلب و عروق برای هفته های بعد اگر پیشنهاد دارید و سوالی دارید بپرسید و بگید که مثلا موضوع هفته بعد بعدتون کبد باشه موضوع هفته بعد کلیه باشه یا مغز و حساب پیشنهاداتون ما پیشنهادات براسین کنیم و بر نظرای شما این زمان رو قرار میدیم. آقای اسلان از مشهد پشت خط هستن. بله. سؤالی که جهانی ولایت بفرمایید. آقای اسلان زاده. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلامت باشین متشکرم. در خدمت هستم آقای اسلان زاده. افزر زاده هستم قربان. آقای؟ افزر زاده. افزل زاده من عذرخواهی می‌کنم. عایش می‌کنم. در خدمت هستم آقای افزر سلام علیکم. علیکم حال شما خوب انشاءالله بفهمه از کنم خدمتون که من سی سالمه بعد بیماری قند دارم جدیدن هم متوجه شدم که بیماری قند دارم در دستوراتی که حاجه فرموده بودند بودن توی برنامه های قبلی فرمودند بادوم ترخ ناشتا یه دونه بخورید شب یه دونه بخورید عربیات استفاده بکنید و دکتر شیمیایی هم رفتم به من قرص متفورمید داد اونم استفاده میکنم مواد غندی هم نمیخورم ولی در این حال با اینکه الان 15 روزه که من رژیم رو رعایت میکنم اصلا هیچ تغییری حاصل نشده یعنی غند من همچنان خیلی بالاست 368 بوده آزمایش که گرفتم ولی هیچ تغییری نمیکنه میخواستم ببینم هست. که اجازه ها چه راهنمایی میتونن بفرمایید ان شاءالله که آقا افسر زاده بهتر بشید دعا میکنیم براتون همینطور شما برای ما دعا کنید به خدمت بیننده و شنونده عزیز سلام از میکنم شاید قند خون شما قند خون استرسیه باید بیخیالی تی کنی در این حال که مسئولیت پذیر هستی نکته سنجی های بیجا دلشوره دلواپسی یا بحثای علکی مثل جدل یک و دو کردن نباشه چون قند خون استرسی با خوراک خیلی پایین نمیاد، پس باید آرام میشه روانیتونو حفظ کنید اگر عیب و نقصی بود توانت بود که برطرف کنی برطرف کن اگر در توانت نبود دیگه درگیری ذهنی نداشته باش دلشور و دلواپسی نداشته باش چون ما قند خون استرسی هم ده مطلب دیگه اون قرص شیمیایی که دکتر محترمتون به شما داده قرص متفورمین در دیابتیایی معمولاً داده میشه که هم اضافه وزن دارن مثل 15 الی 20 کیلو به بالا و هم قند دارن معمولاً این قرص متفورمین تجویز میشه چه در مرد چه در زن حتی در تخصصی نازایی زنانی که اضافه وزن دارن و کم کمکاره و قندم دارن متفورمین تجویز میشه. اما این متفورمین رو باید به صورت نوسانی بخوری اگر هم دیابتی هستی و هم اضافه وزن پونزه بیس کیلو به بالا داری باید به صورت نوسانی بخورن یعنی از نظر تخصصین هفته اول روز یک یعنی بیس چه ساعت یک هفته دوم روزی دوتا تا یعنی هر دوازده ساعت یک هفته سوم سه تا یعنی هر هشت ساعت یک هفته چهارم یکی کم میشه افسانه هفته پنجم یکی دیگه کم میشه پس از نظر تخصصی نازایی و تو بحث اینکه کسی هم اضافه وزن داره و هم دیابتیه باید به صورت تناوبی مصرف کنیم. یه دوزش خاصی که تموم شد بعد با مشورت این متخصص دیابت متخصص هورمون، متخصص متابولیس متخصص قدرت یا فوق تخصص قدرت با مشورت اون دکتر متخصصتون یه هفته استراحت میدن وقتی دارو تموم شد بعد این بدن چکاب میشه ببینم رو فرم اومد یا نه که آیا دارو تکرار بشه یا نه این بیننده عزیز باید دقت داشته باشه که دیابت از بیماری های برگش پذیره نظیر پروستاد در مردان و پسران نظیر ناراحتی‌های های دهانه رحم در دختران و زنان دیابت مثل فشارخون یا مثل این دوم سالی که زدم یا چربی خون از بیماری های برگشپذیره پس نباید توقع داشته باشه به ده فونزه روز درمان بشه نه از بیماری های برگشپذیره یعنی بیمار باید تا آخر عمرش مواظب باشه. چیزایی که براش بده ترک خود. کنه. قنده های شیمیایی براش بده. اوسانس های شیمیایی براش بده. چربی با ترانس بالا براش بده. اینها را باید ترک کنه. حتی بیننده محترم دیابتی باید بدونه که علل ایجاد نارحتی های قلبی مخصوصاً بیماری عروق عروغ قلب آه. که سرگ شریان اصلی به قلب ها عللی داره یکیش مثلا مصرف دوخانیات یکی دیگهش به شما از کنم چربیه با ترانس بالا یکی دیگهش داشتن فشارخون بالای 16 و یا فشارخون استرسی حالا منظور من اینه یکی از عامل های تشدید کننده تشدید کننده بیماری کرانر قلب وجود دیادته <تصفيق> نه وجود بیماری قلب بیماری قلب یه عامل تشدید کننده بیماری های کرانر قلبه بفهمم پس این بزرگوار اینایی که بده ترک کنه اونایی که خوبه که دو عدد مغزه بادام تلخ بود نصف استکان عرق کلپوره فوره بود نه هر علقی و این متفورمین هم که متخصص فرموده اشکال نداره ولی باید به صورت تناوبی باشه اگر علاوه دیابت اضافه وزن داره دو دسته بگیریم با همه چش, چش. خب ما که خط بردی جناب آقای فکوری از شهر تربت جام دخمتون هست درستانمون برست کنم اتاق فرمان خطه ایشون رو بله سلام شبکه جهانی ولایت به فهمونه آی فکوری علیه سلام علیکم علیکم السلام و السلام از عزیز خدمت حدود سن حدود و تار پهست سن حدود دارم دو از عزیز که آیا اصلا برام معصر هست و حالت حالت استرس و سرابی ندارم خیلی ممنون مترکن هم های به سوال سوال از شما خدافیزی میکنم پس از بگیریم آره. از تماسی داشتیم جناب آقای دوستان هم مضابه فرما خطه اسفحان رو هم بست به من که فامیلشون چیز آقای قاسمی از اسفحان آقای قاسمی سلام سلام علیکم وقت حالی بخیر سلامت بشیم و چه که در خیمتون هستید خوش خانم من متلا شدن به خارش بدن بله. البته یه مقداری رفتن آزمایشو خون چربیه کلسترولشون بالاست سی بالاست. و و قندم تقریبا سد ولی نتونستن این لرشو پیدا کنن که این خارشی بدنشون بالا چیه. در زمین من خودم بالای 50 سالم ولی بی اشتهای خیلی از انواع دوکسوراینا رفتم اجازه بفرمایید خلاصه از این فکر اهل بیت ما رو بینیف نگذردن یه راهنمایی بفرمایید خیلی بزرگواری دارید واسه این متشکرم انتما سوال دارید شب های به متأسفم میتونم خودم خب حتما بعدی رو هم بگیریم در خدمت عزیز بعدیمون هستیم آقای زریف از مشهد بله آی زریف در خدمتون است آی زریف از مشهد در سلام و سلامون علیکم سلامون علیکم در خدمتون ایم سلام باشه خدمت آجاما خواستم از کنم که برای سنگ کلیه چه راه حلی الاز دینی هستش که ما انجام بدیم. بله متشکرم. خیلی ممنون تسواستون خب امطور ایشون خارج از ای موضوع برنامه رفتن این رو نگه می‌داریم از انتظار شده خط بعدی هست بستان آتاقا فهمانمون که بگیریم و یا نه که بریم به سوالات آقای فکوری و قاسمی بررسی من متوجه نشت. خط بعدی رو هم وز کنیم که این آخری خطی باشه که در این بخش میگیریم و در بخش بعدی باز چند خط دیگه ای داشته باشیم شمار پنمک هم من یک بار لا میکنم سه و ده رو به این شماره ارسال کنیم آخرین خط خانم نادری بله خانم نادری از اصفهان سلام علیکم بفرمایید سلام خسته نبایید سلامت باشین ببخشید یه سوال داشتم در مورد سر در مورد سر تنشیو یعنی بله این سر تسننج بله. سوالتون دقیقا چیه بفرمایید می‌خواستم ببینم اینایی این ای که سر تنش و سر این مقاوم به درمان دارن باید چه دارویی از نظر طبیعی و طبی چیز کنن استفاده کنن یعنی ببینن که برن که بهن خوشی خوب بشه و حافظش خوب بشه فرق مثلا مفروه و تشنادیه باید چی بخوره که خوب بشه به نه داروی شیمیایی مصرف میکنن؟ بله داروی شیمیایی مصرف میکنن؟ بله بله خیلی سوال نداری شما ندارین؟ خیلی متحکم از فواست مخواهم نداری؟ خواهش میکنم خدا نگه خوش آقا یک و دو و پنج رو سوال داریم؟ این منده اول از طربت جام, جام در مورد اینکه آیه اصل براشو خوب بود یا نه بل. بل. بلی بیماری دیابت داشتم درست بل. پس از عرض سلام به خدمت آقای فکوری از طربت جام اصل طبیعی و سیب رسیده در تخصصی تغذیه و قدد قند خونو بالا نمی بره لذا یک عدد سیب در 24 ساعت یا یک قاشق بخوری اصل طبیعی بخورن اشکال نداره چون اگر قرصای زده قند میخورن یا مخصوصا اگر انسولین تزریقی هن اینا دوچار یک زعفی میشن لذا متخصصین میفرماین بعد از تزریق انسولین یک کفتست مثلا نون خشک بخوره تا یک مرتبه قندخون نه یه زیر نوت باز از این بره بوم بیافته بهذا اصل طبیعی و سیب رسیده قند خون بالا نمیبره مگر انسان پرخوری کنه مثلا چند تا سیب بخوره چند لیوان آب میبه سیب بخوره یا مثلا از این آب میبه شیمیایی بخوره که هر کدامش دوازده حبه قنده پس این اگر نه اشکال نداره سوال اون بزرگوار بعدی چی بود؟ این که میگفتن همسرشون مبتلا شدن که به خارش بدن خیلی بدنشون بره. خارش داره چربیشون 360 تا ایشونه و قلبشون هم 108 بره. اینجا باید قندشون نرمال کنن اگر سنشون تا 35 ساله بین 90 تا 110 قند خونشون ثابت نگه دارن نوسانی نباشه متغیر نباشه افت و خیز شدید نباشه چربی خونم باید بیان پایین حداقل 250 حالا ایشون زیاده اینجا باید چکار کنیم؟ چربی با ترانس بالا نمیخوریم به مدت دو هفته مطلق چربیای های حیوانی و گیاهی رو ترک میکنیم فقط روغن زیتون یه قاشق پلو خوری با نهار یه قاشا پلو خوری با شام میخوریم قضاهاش رو بی روغن درست کنیم بعد چیزایی که چربی خون میاره پایین مثلا ایشون کلسترول بعدشون بالا بود میتونه از شیوید استفاده کنه ش قاذه بود یه مش میخوره خوش شدهش بود یه مرب بخوری عرق شنبید بود یه استکان عرق شنبید در 24 ساعت یا نه قرص گیاهی از داروخونه میخوره آنتوم آنتوم بنویسه و نخونه حرف استثنایی اجازه من از خون بعد تو 5 6 دقیقه جمع کنیم یک بله بله. اگر اگر با هم ال دی کلسترول بعدش رفته بود بالا و هم تریگلیسیریدش چون این یه عدد کدو مصمم با پوستش بخوره به همراه نهار بس. این مال این بزرگوار حالا خارش بدنش حاجبها سوه کردنی تفت بودادنی تو میوه ها موز از همه قندش و چربیش بالاتره اه. نباید موز بخوره بیجوز. گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی نارس یا نیمه نارسش دو تا سم داره در تخصصی سم رضا بدن کهیر میزنه و زونا هم تشدید میشه نباید بخوره پوست بادم زمینی و عربا میفرماین فستق پوست بادم زمینی که صورتی رنگه نباید بخوره هم بدن خارش میگیره میگیم بیماری حکه و هم جرب تشدید میشه بیماری گال و همچنین آس میاره عصر نفس یا تنگی نفس اینایی که بده تو میوه‌های دیگه مثل کیوی پرز کیوی هم آس میاره هم حساسیت پوستی میاره. پس اینایی که بده ترک کنه حالا چیکار کنه؟ با نهار شامش کاهو، الخس یعنی کاهو بدون سس بخوره و همچنین شب قبل خواب یک عدد لیمو خارش شدید بدنشون خوب خودشون آقای قاسمی از اسپان گفتن که اشتهاشون کم شده؟ بی, اشتها... بی اشتهایی در کودکان، نوجوانان، جوانان میانسالان و کهنسالان. شما بزرگوار که میانسالی. بی اشتهایی سه نوعه. گوی بی اشتهایی فقر روی غذاشون رو تو ظرفای روحی درس کنن. یعنی که پیش متخصص تغذیه میان، قرص روی می‌گیرن. دوم این که گوی بیش... بی اشتهایی التهابی مواد نشاسته ای میخوره مثل برنج، ماکارونی، سیب زمینی، کوکو سیب زمینی اما باش میوه و سبزیجات نمیخوره. اینجا بی اشتهایی التهابی میگیره. سوم گاهی بی اشتهایی عصبیه. اینجا باید تقویت اعصابش کنه. مثلا تو خوراکیا عسل آبیشن و نعناصاب می میخوره تو میوه ها، میوه آناناس اصلا میخوره تو بحث غذای کامل مقاوی اعصاب بهترین خاویار جهان رو ایران اسلامی داره بزراد صادراتیه و در خارج هر کیلو خوابیار ایران به پول ایران چند میلیون تومن میفروشن اینجا حالا اگر وضع جیبش خوب بود در هفته دو بار نهار نهارش خوابیار میخوره اینا قویترین ترین قضای تقریه عصابه تو سبزیجا ترخون ولی به تنهایی نخوره آس میاره قاطی سبزی خوردن مثلا جعفری داره تره داره نمیدونم شیوید داره مثلا. حالا ترخونم مثلا داره پس قاطی سبزی خوردن ترخون میخوره یا به همراه قضا به تنهایی نمیخوره زیاد نمیخوره آس میاره ولی مخلوط که بخوره تقریه عصاب میاره سال بعدی که پرسیدم من چون سریعی میخوام به همه سال پاسخ بگیریم برای سنگ کلیه گفتن یه راهکار اسلامی ارائه کنید باید ایشون تشخیص سنگ برن اصلا جهاد دانشگاهی برن آزماشگاه تشخیص سنگ سنگشون کلسترولیه سنگشون آهکی گچیه سنگشون سیلیکاتیه زرد رنگ یا مایل به سفیده یا اینکه نه سیاهه و روش نقطه های سفیده اینا سنگ های سیلیکاتی پس نوع سنگ که مشخص شد داروها هم مشخص میشه اما داروی عمومی برای پیشگیری و دفع رمل شن و همچنین سنگ کلیه یک داروی عمومیش اینه که در 24 ساعت 8 لیوان 4 لیوان آب آشامیدنی سالم 4 لیوانم آب جوش بلرب و هیچ مایهی جایگزینه این دو مایه نمیشه yes. لذا هم آب آشامیدنی سالم و تو جیر باشه تو بی چاست هم چار لیوان آب بله mm -hmm. هر دوش هم هم آیات هست و دومیش در روایات yes. یعنی از آیه قرآن و همچین از روایات مربوط با آب آشامیدنی سالم داریم و انزلنا من السماء اما انطهورا حالا به یه بر بحث طهارت و نجاست و وزو و قسل شهری و این مسائل و شست و های غیر وسباسی و غیر کسی و شکی بحثای بدنی هم هست لذا متخصص این اورولوژی و کلیه شناسی میگن اگر افراد این سنی در 24 ساعت 8 لیوان آب آشامیدنی سالم تو جیره قضاییشون باشه هیچ وقت دوچار شن کلیه و سنگ کلیه نمیشه مگر نارسایه ژنتیکی باشه یا نارسایه عارضی دیگه باشه مثلا کسی که تورم شرید پروستات داره و مجرای پیشاب را بسته شده و حتی انزال منی نمیتونه رفلکس ادرال و رفلکس منی از پیشاب را به مسانه است اینه حاج و یک محتبه ریزش شن کلیه دارن دکتر میترسیم میگه سریع برو چند تا عکس اینه بگیر بعدم میگه اگر بعضی مسائل هست می خب یه سال آخر رو پاسخ بودیم در روی طبیعا منظرت میخوام خواهش چون چارلیمان آب و لیوان آب جوش ولرما تو خوراکیا فاجل یعنی ترپچه به اصطلاح روایاتشیه به اصطلاح عرب های و غیرتمند کشور عراق عزیز اونجا میگن فجل عرب های نجف رو کرد فجل. اینجا تو روایاتشیه میگه ورقوه برگ تروپچه مدره ادبار آوره غلدهنده طبیعی شناسنگ. تروپچه قرمز آفرین دوم این قده زی زمینش ضد بلغمه این ریشه هاش ضد سودهه که بحث ناراته اعصاب باشه یکی دیگه از چیزها عرق یا خود خارخسک یکی دیگه عرق خارشتاری یکی دیگه تیزن مخلصه ما دارسازی حکیم تبریز آنان که ماشاءالله فصل پاییز و زمستون میاد تروب سیاه میاد تروب سیاه قوی ترین داروه زده سنگ های گچی و آهکیه مثل که آب بریزید و سنگ آهک بعد راته بکشید برید و فعالات شیمیایی این سنگ آهک پوک میکنه پودر میکنه سنگ های گچی و آهکی کلیه اما جا جواب تروب سیاه اگرم نارهتی های غیر عضوی معده ندارن نفخ شدید ندارن اوریفلاکس ندارن اسید معده از حالت تعادلی بیرون نرفته با نهار شامش تروبسیا بخوره یا اینکه یک لیوان آب تروبسیا ایستاده تو حیوانی میشه میخوبه سعیش رو بالا بگیره و قدم بزنه وقتی که قورتش میده میسوزه تا نیم ساعت بعدش هیچ چیز نخوره یه چند نوبت دستشوی کوچیک که میرن حاجقا این دستشویی کوچیکشون ادرادشون حالت لُچماننده همون سنگ سنگای گچی آهکی رو خورد کرده و به صورت پودر محلول بیرون میاد آخرین سوال که خیلی خیلی ها جوابت کتابش به پردازی میمود که گفتن که تشنج دارن بیماری سر دوارو مصرف میکنن حالا راحلی میخوان پیدا کنن که ذهنشون هوششون افزایش پیدا, پیدا کنه به خدمت این بیننده عزیز سلام از میکنیم و میگیم که تشنج پنجاه نوعه بعضی تشنجا جنتیکیه به خاطر بعضی مسائلیه که پدر مادر رعایت نکرده و جهش و متاسیان صورت گرفته و نارسیایی ژنتیکی یا وراثتی رخ داده دوست. اونها رو پزشکی جدید تا کنون درمانی بلد نیست فقط موازبت میکنه که تشدید نشه تشندش اما اگر تشنج آرزیه یعنی سرعش آرزیه ژنتیکی وراثتی نیست مثلا خونی شدید بوده خون قالبن زیر نه بوده و گایی به هفت و شیش می رسیده که دست پاش می لرزه رنگش مثل گشت سفی میشه به حالت اغمام یفته زمین گایی تشنج ناشی از تب شدیده در کودکان مثلا چهل درجه در افراد دیگه مثلا چهل یک درجه برای, برای این که اندام حیاتیش مثل کلیه ها، کبد، قلب اینا آسیب نبینه حتما باید طب شدیدشو بیاره پایین حالا با آمپول طبر متخصص تجویز کنه یا به بعضی مسائل دیگه که تو پزشکی اسلامی هست طب شدیدو میشه و پایین مثلا حنا یا آشو پلو خوری میزه تو نعل بکی بعد سرکه طبیعی قاتش میکنه کف پای مریض تخت فنریای کف پای مریض 20 دقیقه میگذره باشه تب رو میاره پایین اگر فشار خون بالا بود که گفتیم یکی از عواملی که ناراستاییه کرانر قلب میاره اونجا صبر زد به قول امروزی ها آلو اهورا آلو به قول خودمون صبر زد که تو روایاتش هست ها اینجا یه صبر زد سمیه نباید بخورم بله. یه قاشق پلو خوری صبر زرد میزه که نال سرکه طبیعی انگور اسکری باش هم میزنه زمادشو کف پا فشار فشارخونای نوستانی 16-18 به بالا 20 دقیقه کف پا است بعد با همین آب سرد و لوله کف پا شی فشار فشارخونای میره پاییم من میکنم که حرفتون رقع کنم این اگر آرزی بود بله. تقویت کننده داریم حاجا بله. مثل اصل گرم بخوره. بله. عسل رقیق شده صبحگاهی و آب سیب شامگاهی جسد. کسانی که تشنج دارن اگر بخوان تشنش تکرار نشه و شدید نشه حتما باید مواظب باشن که مریض و بیمار گرامیشون تب نکنه عفونت داخلی هم نگیره جسد. برای اینکه هیچ وقت تب نکنه افونت داخلی نگیره عسل رقیق شده صبحگاهی و آب سیب شامگاهی ما خودم اصلا دوست ندارم صحبت‌های احساسی رو باز کنم اما به من اعلام کن که کلاً زمان برنامه تموم شده 60 دقیقه‌مون یک دعای سوال. خیلی خیلی مختصر اللهم صل علی محمد و آل محمد مجنم فرجم اللهم شفاء مرضانا و امراضنا اللهم صل علی محمد و آل محمد طبیب واقعی و پزشک پزشکان مولا صاحب زمان که منتظران واقعی خود صالحان و منتظر مصلحه همه رو به خدا میسپارن. متشکرم آجا خیلی ممنون. خب زمان برنامه خیلی کمش 6 دقیقه من حتماً این اعترافو بکنم احساساتون پرروکاتون به ما میرسه. تلفن‌ها هم اینجا تماس بسیار زیاده نمیتونیم نمی‌تونیم پاسخگو باشیم. 3059 ده منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. هفته بعد هم موضوع برنامه قلب و عروق هست. میتونید سوالاتون در تایی هفته برای ما ارسال کنیم از طریق پرمک قول میدیم به شما که هفته بعد در ابتدای برنامه به اون بپردازیم پس تا چهارشنبه دیگه شما از زن رو به خدایی تا میسپارم خداییارو نگه دارد